در هفته قبل ارض کردیم که از جمله احادیث متواتره که روایات سنی و شیعه بر او وارد شده حدیث منزله است که رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم مکرره در مکرر در موارد مختلف فرموده است انتمینیم به منزلت حارون هم موسی ها و بعد به مناسبت این جهت ارز کردیم حارون چه مناسبی داشت و چه وظائفی داشت و از آیات شریفه قرآن درمیاد که حارون چه میکرد و چه منصبهایی داشت به مقتضای این روایات متواتره همون منصب برای امیر المؤمنین سلام الله علیه ثابت این رو هفته قبل عرض کرد در اینجا امشب برو این رو ارزم که به مقتضای آیه شریفه آیه مباهله امیر به منزله نفس رسول الله صلی الله علیه بالا. نه مثل هارون نسبت به موسا یه خود بالتن. به جای خود رسول الله و به منزله رسول الله و به تعبیر بعضی جان رسول الله چون اینکه تو روایات و روحی بین روحی که به منزلت روحی من جسدی شبیه این قدر خود رسول الله خودش این تنزیل شده به جای او و این خود. این آیه مباحله که حالا عرض میکنیم انشاءالله در قضیه نسارای نجران وارد شده تفسیر و خصوصیاتش رو باید تو کتاب تفاصیر و یا در کتاب بهار مراجعه فرمایید ولی اجمالش این است که در بودن نصارا اهل نجران نجران شاید از نزدیچهای اطراف مدینه باشه خیلی دور نبوده رسول الله علی و علی برای اینها نامه نوشت که باید مسلمان بشی، اینها هم مزترب شدن که باید مسلمان بشیم چه بکنیم چه نکنیم یه ادهی از بزرگان خودشون از علما خودشون رو فرستادن مدینه پیغامبرم فرمود باید مسلمان بشید و عرض کردن که به رسول الله که تا به حال شما دیدید آمدن از پیغمبر پرسیدن که شما درباره عیسی چه می حضرت فرموده و عبدالله و رسوله بنده خدا و رسول خداست عیسی علیه السلام از کردن که شما تا به حال در عالم دیدید که یک انسان بی پدر به دنیا بیاد ایسا مسیحی بنابر گفتی قرآن یا حالا یا همشون نباشند یا عده مسیح ابن الله مسیح رو پسر قدا می دونند دیدیم که یک انسانی بدون پدر به دنیا بیاد این آیه شریفه نازل شد این نمثل ایسا الله که مثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فيكون. یکون مثل آدم دیگه بالت رزو نیستش که ایسا مادر داشت آدم که نبت در داشت نمودر ان مثل ایسا عند الله که مثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فيكون. الحق من ربک فلا تکن من المنترين. این حق است که از جانب خدا نازل شده و این در حقیقت یک استدلالی است برای این مطلب که این چنین نیست که هر کسی که بی پدر به دنیا آمدی رو خدا حسابش کنی این هم مثل انسان‌ها بنده است محتاج بنابراین این چنین نیست که چون بی در به یا آمده وی رو خدا حساب کنیم شما مثلا به مسیحی ها شما آدم رو خدا حساب نمی انسان رو خدا حساب میکنیم پس بنابراین اینجا نیست در حقیقت از قرآن شریف ورمد این است که از جانب خدا نازل شده بر تو شکی در اون نکن و بعد از این مطلب من حاضر کردم وعده اگر کسی بعد از این دلیل واضح و آشکار باز هم با تو حاضر می کند و نزاع و جدال میخواد خواد بکنه فقط و ند و ابن و ابن آکم و نسا انا و نسا و انفس انا و انفس و نبتهل که همین الله علی به اینا بگو بیاین مباهله کنیم مباهله به معنای اتهام به معنای تزرع کردن و از خدای متعال چیزی را با خضوع و خشوع خواستن است شما هم بیان ما هم میان و ارزمشادی رو می میکنیم یعنی از خدای تعالی با تذبه و خشوع میخوان که خدا از خودش صادق رو از کاذب معین کند که کی دروگوست و کی راستگوست اگر ما دروغگو هستیم عذاب خدا نازل بشود و ما رو از بین ببرد و اگر شما دروغگو هستید عذاب خدا نازل شود و شما رو از بین ببرد این آیه شریفه و اینها رو دعوت کرد به مباهله مباهله یعنی ملعنه و با تضرع و چیزی و آزاری از خدای تعالی خواستن که خدای تعالی عذابش را و لعنتش را بر دروغگو نازل کنه این معنی مباهله و از روایات استفاده میشه که مباهله و امر سابقه دار بوده یه چیز تازهی نبوده سابقه داشته در ازمیشد عمم سابقه به هر حال این چند نفری که از طرف نصارای رجران آمده بودن که از علماشون بودن گفتن ما میرم فکر میکنیم و میان ببینیم که آیا فردا به شما خبر میدیم که آیا ما مباهله بکنیم یا مباهله نکنیم رفتند و مشورت کردند. اونی که توی روایات هست بزرگشون اون که اعلم همه بود گفت فردا میرید اگر نفید ترین افراد به خودش رو اوورده بود برای مباهله با اون مباهله نکنید که از بین میرید و اگر افراد اصحابش رو بود مباهله کن. این مطلب که نزدیکترین فردش رو انسان بیاره بچهش رو بیاره زنش رو بیاره خودش علاوه بر اینکه خودش آمده بچه و زنش بیاد برای اثبات یک مطلبی و مهیا کنه خودش رو برای نزول عذاب و حلاکت در پیشگاه خدای تعالی این خیلی یقین میخواد. این صد درصد یقین قطعی یک کسی خودش تنهی میاد مباهله میکنه کسی خودش میاد زن بچهش هم میاره بچه های کتیش هم میاره از شد انگاه المویدین هم میاره که الازمی کنی اون دیگه حاضر شده برای فناء همه اون معلوم میشه مطلب قطعیست هیچ گونه تردیدی برای این نیست امامان رو بعد دیدن که امیر الم... یعنی رسول الله صلی الله علیه و آله از میشد در بعضی یعنی از روایات داره که حسین صلی الله علیه رو بغل کرده بود دست حسن رو هم گرفته بود پشت سر اینها زهرا سلام الله ها پشت سر اینها امیرالمؤمنین صلی الله علیه اینا آمدن برای مباهله به اینا میگه پیغمبر میگم من دعا کنم شما آمین بگید در بعضی از روایات هم داره نه دست حسن و حسین رو گرفته بود در یه روایت داره حسن حسین رو بغل کرده بود و دست حسن رو گرفته بود در یه روایت هم داره دستشون رو گرفته در کتاب از تفسیر زمخشری تفسیر کشاف نقل کردن به همین کیفیت موجوده در آیه یعنی رسول الله و واله آمد تعال و ند و ابنانو بچه هاش پشت سرش یعنی امام حسن امام پشت سر رسول الله و نسائنا زهرا سرام الله علیه ها پشت سر حسن و و حسن و انفسنا امیر پشت سر همه به ترتیب آیه اینجوری آمد برای مباهله کرد اینها که دیدن پیغمبر رو که با نزدیکترین فردی از افراد خانواده اش آمده گفتند اون رئیسشون گفتش من وجوهی را و بلکه اوها و شکل‌هایی را میبینم که اگر مباهله کنید احدی از نصارا باقی نمیخواهند مون تو عالم مباهله نکردند و گفتند ما ما نمیکنیم می کنیم پیغمبر فرمود پس مسلمان بشید گفتند ما مسلمونم هم نمیشیم ولی حاضریم که جزیه بدیم قراردار بیاجه به جزی بستن دو رفتن حالا اون جهات مطروبه بنده به معمول از حضرت قضا سلام الله علیه مپرسد که ابن رسول الله بالاترین فضیلت جدت امیر و سلام الله علیه چیست؟ از قرآن حضرت مفرمات آیه مباهله خدا او را به منزله نفس و جان پیغمبر قرار دادید این خودش جان او و نفس او البته به تعبیر تلبیگیش وجود تنزیلی او نه وجود حقیقی پیغمبر پیغمبر ولی این وجود تنزیلی او یعنی تمام آثار و تمام منصب‌ها و تمام کمالاتی که برای رسول الله و آله هست برای امیر المومنین هم هست استثناء اونش که استثناء کردن همه و خود به که نبوت باشد. حضرت رضا سلام الله علی فرمود که آیه مباهله این آیه مباهله از می فضیلت جد هم و بالاترین فضیلت حضرت که او را خدای تعالی به منزله رسول الله و نفس نفیس رسول الله قرار داده معمون از میکنند یعنی رسول الله انفسنا معناش یعنی خودمون تعالوند و ابنا و ابناءکو یعنی بچه هاتونو بیارین زن هاتونو بیارین خودتونم بیان شما چرا اینجوری معنوی می‌کنی به قول ما که علی و بیت نفس رسول الله تا و ذو و ابنا, و ابنا اکن. یعنی خودتون بیان بچه‌هاتون هم بیارین زناتون هم بیان خودتون هم بیارون با انفسه کن معلومه اینکه معلوم ای شده خیلی مله ها خیلی چیز بلد بوده که حالا معلوم میشه یه خوردهش از می‌شود نه اینکه یعنی مرسول الله معنای انفستتون یعنی خودتون چرا شما معنا میکنی؟ یعنی امید مؤمنی این چجور معنای مثلا؟ حضرت چنین فرمود؟ فرمود به این که که فرمود فرمود به این که بله معمون عرض میکند که من اول عبارت رو بخونم بعد نیست اخبرنی به فضیلت تدلو علیه القرآن قال فضیلت من المداهله دعا امیر المؤمنین علیه و السلام و فرزندان و, و فلان و فلان و این جهت ها لعرض میکنم و اینها رو خودش و وجه علیه نه رسول الله صلی الله علیه و آله لقد ثبت عند الدرجوه ثبت ليس احد من خلق الله عجل عند الله تبارک و تعالی من رسول الله صلی الله علیه مخلوقی بالاتر از رسول خدا و برتر و عزیزتر در پیشگاه خدای تعالی از رسول الله نیست فرجبا انه یکون احد افضل من نفس رسول الله کسی بالاتر از اون شخصی که به جای رسول الله و نفس رسول الله قرار داده شده کسی بالاتر از او نیست چون این به جای او نفس اوست این از شد مأمور که عرض کردم از می کند المراد من نفسه هو خوبت الحقیقت که دون و مراد فی نفس انفسان یعنی خودمون رو بیاری خودمون بیان بازن و بچمون. قال علیه السلام حضرت رزا سران و علیه فرمود لیس یه خماده کرد حرف تو درست نیست از ظالب و ظالک این ندائی ای این نما یکونه لغیره آیه دعوت کنیم بچه رو دعوت کنیم زن رو دعوت کنیم خودمون رو دعوت انسان میکنه دعوت از غیر میکنه تعالو ندعو ندعو نه او ابنا و ابنا و نسا و نسا و بیا رو دعوت کنید حضرت می فرمد لا معنی برای اینکه انسان خودش رو دعوت کند چنون که معنا ندارد که انسانی خودش خودش رو عمر کند نسواری نیزنه نبود باید ما می گیم عمر کرد یعنی کسی دیگری عمر کرد من به خودم عمر کردم معنی داره به خودم عمر کردم پس همونگونه که تو معنی عمر و تو مفهوم عمر یه عامری خوابیده و یه معموری و دو تا که ای به او عمر میکنه در معنی دعوت هم همین دوتا خوابیده، یه دعوت خوابیده یه دعوت شده خوابیده معنا نداره که انسان خودش رو خودش خودش رو دعوت کنه چون که معنا نداره که خودش خودش رو امرو کنه. بنابراین نمیتونیم در اینجا ام را رو کنیم یعنی خود خودمون رو تا حال ابنا و اغناک و انفرسانوی دعوت کنیم خودمون دعوت کنیم که عبارت نیست و خود خود قرآن رو بری هم کنیم اصلا عبارت عبارت که اگه کسی به کسی بگه نگه خودمون امروز میگم کجا دعوت داریم میگم دعوت داریم شبیه شبیه کنیم بارم من خراب حضرت رضا فرموز به اینکه و لایست هما ذکر و ذالک اند داعی انما یکون داعیان لغیره کما انهو انال آمر لا یکون آمران الا لغیره آمر جایی صادق نیست و لم ید او رجلن وقتی رسول الله مردی رو دیگه دعوت نکرد ابناعنا رو عوود حسن و حسین را نساعنا رو عوود زهرا سلام الله علیه ها را و مرد دیگری غیر از علی نبود بدون که فقط ثبت انهو نفسو خودشه این روایت از حضرت رضا سلام الله علیه این معمون فرم روایت دیگری که <تصحنت> آلو رز و این مطلب که این آیه مداهلت در حق این بزرگواران نازل شده از جمله روایات متعدد و متکسر و شاید بیش از حد تواتر عادی بین سنی و شیعه نقل شده یعنی یک نفر سنی نگفت که رسول واقعاً این نفر را آورد هیچ کسی چیمین نقلی رو نکرد شاید از موسیقی عفر در یک از روایات می فرمد کل بر و فاجر یا بر و فاجر یعلم انهو ما جا رسول الله صلی الله علیه و علیه غیر از این چهار نفر دو هر بر و فاجر این مطلب رو می داند مطلب روازه و از تید ابن تاوسر رسول الله تعالی علیه در کتابی از کتاب‌های خودش نقل میکنه که در یکی از کتب آمه پنجاه و یک سند از برای این روایت سید ابن تاغوس نقل میکنه که از اصحاب رسول الله این روایت رو نقل کردند از قبیل عثمان عبدالرحمن ابن اوف سعد وقاست نمیدونم به این که فضران تله زبیر انس ابن مالک اینا رو همجور اسمشون میشموره پنجاه و یک سند از اصحاب رسول الله این روایت رو نقل یکی از روایاتش همون سعد وقاص بود که هفته قبل به مناسبت همون حدیث انتمنی به منزلت هارون و موسی ارز کردیم که معاویه به سعد وقاص گفته بود که چرا عبی تراب رو لعن نمی سعد وقاص گفت سه تا مطلب از علی میدانم که دلم بخواست یکی از اینا مال من بود در مقابل تمام انوال شدرهای کذایی می دادم. اون وقت بعد این ستاره که میشماره یکیش انتمنی می به منزلت هارون قضیه تبوک رو میشمره که اون هفته قبل از کردیم یکی اینی که فردا از نشاد دیرق و برچم را به کسی میدهم که یو حبه الله و رسوله و یو الله و رسوله و یکی هم همین قضیه که وقتی آیی مباهله نازل شد پیغمبر این چارتر و دوش برد برای مباهله بنابراین سنی و شیعه این مطلب رو نقل کرده که آیه مباهله پیغمبر برای مباهله همین چطور رو برداشد یه روایت است که این روایت این بودش که معمون از حضرت رضا سران و علی به این که افضل منقبت جدت امیر المؤمنین در قرآن چیست؟ حضرت فرمود آیت تو انفوسنا آیه مباحله در یه روایت دیگری داره که مأمون از حضرت رضا پرسید دلیل خلافت جدت امیر چیست؟ قال آیت تو انفوسنا قال لولا نساؤنا ن لولا ابنا اونا فسکت مع پرسید دلیل خلافت جببد چیست فرمود آیا تو فسنا انفس آیا انفسنا دلیل خلافت جمه معمین گفت اگه مثاعنا نبود دلیل شما درست بود ولی چون سااعنا توش هست دلیل شما درست میی حضرت فرمود اگه ابنا انا نبود حرف تو درست بود ولی چون ابناعنا پیش خ حرف تو درست نیست فسکت مع اینکه از که معم خیلی ملا بوده نه هیچکی و این چی بگه؟ میلا میساون آیا تو انفص نه؟ قال میلاون ها قال لولا ابنا اون ها فسکت ها استدلال خاطر پیدا کرد. و بزرگان و علما برای این جمله لولاهایی که اینجا توی این داره به امورت که حالا چجوری باید این کرد ولی یکیش رو مختصرا از میکنیم که حالا اجمالاً معلوم بشه. حضرت فرمود آیتو انفوسنا آیه انفوسنا این به جان جای پیغمبر و به نفس پیغمبر تنزیل شده است بنابراین تمام شعونی که برای رسول الله هست برای علی هست بنابراین آیات انفسنا دلیل خلافت جد من هست معمون است کرد که لولا اونا اگه اونا نبود این مطلب شما درست بود ولی حالا که نساؤنا توش هست شاید انفسونا یعنی رجالونا انفسونا یعنی رجالونا مرداتون مردم اونا بیاریم زنونم بیاریم پس انفسونا دلالت داره بر این که مردا این دلالتی و فضیلت امیر المؤمنین نمی کنه رو بیاره از مرد علی بود و از رشتن بردن پس انفسونا به معنای رجالوناست به قرینه نساؤنا اگر نساؤنا نبود انفسونا هم که شما می خوب بود ولی حالا که این قرینه پلوش هست که انروز از اونا هست این انفسونا یعنی رجالونا فرمود نه حرف تو درست نیست زیرا ابنا هم داریم اگه ابنا نبود حرف تو درست بود ولی اگر اگر نا نوی یعنی رجالونا دیگه ابنا گفتن نداشت محتاجی به گفتن ابنا نبود پس حالا که ابن رو گفته ملیش انفوس اینا رجال اینا معناش نیست این که از معناهاییست که برای این روایت کردن من الان اینو نمیخواستم بگم یعنی در مقام بیان اثبات خلافت نبودیم در مقام بیان اثبات این مطلب بودیم که ما باید از کی اخذ کنیم ما اعتقادمون رو احکاممون رو اخلاقمون رو وظائفمون رو از کی باید اخذ کنیم که سمره امامت اینه برای ما الان در این زمان ما از کی باید وظائفمون رو از نظر اعتقاد و اخلاق و عمل و واجبات و محرمات اخذ کنیم روش کی رو بایستی که پیروی کنیم و اینها کنیم ما این رو آیا تو و ما. گفتار این گفتار رسول الله هست کردار این کردار رسول الله هست بنابراین به جای اوست است را که که این بد نیست خوب از تذکرش اون مطلب است که و ما ندعو ابنا انا و ابنا و نسا و نسا و انفس و انفس و سن نبتهل فنجل لعنت الله علی کاربین بیانی بچه بیاریم رو بیاریم زنمون رو زنهامون رو بیاریم بچه همون رو بیاریم نفسمون رو هم بیاریم و اون وقت مباهله کنیم و لعنت و عذاب خدا را بر دروغ و گویان قرار دهیم اونجا اگر کاذب بود ما عذاب و لعنت را بر دروغگو قرار می دادیم. این معناش است که طرف دعوای نشدران کیه؟ رسول الله هممون از خدا بخوان که خدا بر دروغگو عذاب نازل کنه یعنی در پیغمبر اگر مثلا او درگو هست ولی نه روای آیه شریفین فرمت فلنجال لعنت الله علال کاغبین که یعنی دروغ گفتن بیایم از خدا بخوایم که خدا عذابش را بر دروگ گویان نازل کند معنای این جمله چیست؟ معنای این جمله این است که رسول الله امیر المؤمنین زهرا سلام الله علیه ها حسن و حسین همشون طرف دعوای نستارای نجرانن همشون دارن اونا رو دعوت به خدای یگانه میکنن همشون اونها رو میخوانند به صحید و اگر بنا بشه که اینا دروغ میگن عذاب بر همشون نازل بشه و این مطلب از توش در میاد که مؤزم شد دعوت به توحید منحصرا رسول الله نیست دعوت کننده به توحید زهراست دعوت کننده به توحید علیست دعوت کننده به توحید حسن و حسین است این طرف دعوه رو جمع قرار داده طرف یه فرد نیست طرف دعوار جمع است لعنت رو نازل کند خدا بر دروغگویان ما دروغگو هستیم بر ما نازل کنه شما دروغگو هستید بر شما نازل کنه یه وقت اینجوری میگفت لعنت نازل بشود بر دروگو ازنه بچهش یه وقت اینجوری بود یه وقت نمیگه بر دروغگوها ملوش همه مدعی هستند در مقابل نصارهای نجران اونا ادعا میکنن عیسی پسر خداست اینجا رسول الله و علی و ذهره و حسن و حسین همه دارند دعوت به توحید میکنن و همه دارن ادعا میکنند خدای تعالی خدای تعالی خداست و عیسی عبد خداست پس من میشه دعوت منحسره به رسول الله نیست اگر نظرتون باشه اون خیلی خیلی قدیما در زیل این آیه شریفه که یکی از صفات امام رو بیان میکردیم قول از مشود ادعو الى الله علی بسيرته غنمت و من التبعنی. ادعو الى الله پیغمبر میگم یعنی خدا میگم حضرت پیغمبر که پیغمبر به این مردم بگو من دعوت به سور خدا میکنم من دعوت میکنم به هر کسی را که پیرو عقیده من پس همه اینا دعوت کننده به جانب خدا که اونجا معنی پیروک کننده رو عرض کردیم و بیان کردیم پس نتیجته این آیه شریفه معلوم میشه خدای تعالی دعوت کننده رسول خدای تعالی منحصر به رسول الله نیست فرزندان رسول الله، دختر رسول الله، برادر رسول الله، اینا همه دعوت کنندگان رسول خدا در این آیه شریفه این دو تا مطلب پس در میاد هم علی نفس رسول الله هست هم جز به دعوت کنندگان بسیل خدا هست هر دو مطلب از این آیه شریفه در میاد بنابراین ما دنبال کی مقاییم سراغ کی هستی؟ میخوای از کی مطلب عقص کنی؟ نونت از کی مخایی بگیری؟ از کسی که جان رسول الله است از کسی که نفس نفیس رسول الله است از کسی که دعوت به سوی خدا می کند و خدای تعالی او را جزء دعوت کنندگان قرار داده است بنابراین از این آیه شریفه این مرتبه والایی در میاد برای امیرالمؤمنین و این مرحوم مجلسی در زمین که این روایات رو ذکر میکنه بعد می‌اومد از این سنخ روایت در روایات متعدد موجوده و بعضی از موارد رو میشماره که اونمان به قبیله فلان رسول الله نامه نوشت که چنین کنید و چنان کنید و الله کسی رو میفرستم که نفسی مثل نفس من هست این روایتش رو جمع کرده منو مجلسی که پیغمبر نفس رسول اون نفس خودش شمرد علی رو و روحی خواهد منزلت رأسی من جسدی خواهد اونم که جیواجسی همز این متولد. بنابراین هر کسی که دلش میخواد راه رسول الله رو تقیی کنه باید دنبال علی باش اونم بر نزند راه خدا اینجا خیلی خوب این مطلب ما فعلاً خیر خیر اللهم صل علیه